الا باستان 17 جوانه 2008 سختم است این نامه را بنویسم الا چون درباره دوره است که دوست ندارم به یادش آورم اما حالا که میخواهی بدانی عیبی ندارد از همان جایی که مانده بودم ادامه میدهم پس از مرگ مارگو زندگیم کلن عوض شد. جهتم را خودم را گم کردم. روی تاریک آمستردام را که پیش از آن متوجهش نشده بودم کشف کردم. کار هر شبم شده بود رفتن به پارتی ها و کلوب های شبانهی که همه چیز در آنها خلاصه میشد در نگاه و بدن. شبیه حیوانات شبروی مثل جقد و خفا شده بودم با آدمهای عوضی نشست و برخواست می کردم. در رخت خوابهای بیگانه از خواب بیدار می شدم بدنم شروع کرد به لاغر شدن اهمیت ندادم در عرض چند ماه هفته کیلو لاغر شدم مصرف هروئین را که شروع کردم مدتی از راه بینی می کشیدم، تزریق نمی کردم، اوایل خیلی حالم را بد می کرد، هر بار که می کشیدم، حالت تهوع پیدا می کردم و مریض می شدم، بدنم هر نوع ماده مخدری را رد می کرد، این شاید نوعی نشانه بود، اما من حال دیدن نشانه ها را نداشتم بعد از هروین نوبت به بقیه مواد رسید هشیش، کرک، اسید، کوکائین و سرانجام تزریق دیگر هرچه به دستم می رسید امتحان می کردم و هر بار دوز را بالاتر می بردم وقتی حالم سر جایش بود خودکشیهایی از نوع باشکوهش پرنامه ریزی می کردم حتی به تقلید از سقرات نوشیدن سم شوکران را هم امتحان کردم اما یا روی من تأثیر نداشت یا محتوای کیسهی که از در پشتی رستران چینی دربداغانی خریده بودم علف معمولی بود شاید هم نوعی چای سبز به من غالب کرده و به ریشم خندیده بودند چندین بار صبحها در جاهایی که نمیشناختم از خواب بیدار شدم زندگیم به سرعت میگذشت بی که یکی از روزهای زندگیم شبیه دیگری باشد اما خلعی که روحم را از درون میخورد همانجا بود که بو زنها از من مراقبت کردند، بعضی از من جوانتر بودند. بعضی هم خیلی پیرتر. بعضی مجرد بودند، بعضی هایشان متأهل. در خانههایشان ماندم، از ماشین استفاده کردم، در ویلاهایشان تفریح کردم. دست پختشان را خوردم. لباس شوهرهایشان را پوشیدم، با کارتهای اعتباریشان خرید کردم، اما محبتی را که به حق از من انتظار داشتند، به آنها نشان ندادم. عاشق کسی نشدم و خیال کردم هنر کردم. نوع زندگیی که انتخاب کرده بودم، خیلی زود عواقبش را نشان داد. کارم را، دوستانم را و سر آخر خانه روشنی را که با مارگو در آن زندگی می از دست دادم. وقتی دیدم نمی توانم شرایط قبلیم را حفظ کنم، مجبور شدم در خانه بی ها زندگی کنم. بیش از پانزده ماه، در یکی از خانه های, های روتردام ماندم. توی ساختمان یک دانه در هم نبود. در ورودی هم نداشت. حتی حمام هم در نداشت. همه چیز را با هم تقسیم می کردی. ترانه ها را، گیتار را، کتاب را، پول توجیبی ها را، صفحه ها را، مواد را، غذا را، رخت را، فقط یک چیز بود که نمیتوانستیم تقسیم کنیم، قم. هر کسی غم خودش را داشت. پس از چهار سال که به این شکل گذشت، به معنای واقعی کلمه به آخر خط رسیده بودم. اگر تصادفاً در خیابان به یکی از دوستان قدیمی برمیخوردم مرا به جان می آورد. خیلی عوض شده بودم. مثل سایه بودم. یک روز که داشتم صورتم را اصلاح می به آینه خیره ماندم. صورتی که می چنان لاغر و پژمرده بود که نتوانستم جلو خودم را بگیرم. و مثل بچه ها زدم زیر گریه همان روز کارتون هایی را که وسایل باقی مانده از مارگو را داخلشان نگه می داشتم زیر رو کردم کتاب ها، لباس ها، آلبوم ها، گیره های سر، یادداشت ها، عکس ها با همه چیزهایی که یادگار او بود وداع کردم بعد وسایلش را توی جعبه ریختم و میان خانواده های پناهندگان که آن همه دوستشان داشت تقسیمشان کردم. سال 1975 بود. هنوز عکاس خوبی به حساب می آمدم. شانس با من یار بود. در یکی از مجله های معروف گردشگری کاری موقتی پیدا کردم هنوز یک ماه از شروع کارم نگذشته بود که مرا به شمال آفریقا فرستادند تا برای سلسله مقالاتی درباره ها چند عکس بگیرم این شد که ساک به دست و با یک عکس مارگو به راه افتادم نگو از خودم فرار می کردم. مدتی بعد در صحرای آفریقا با انسانشناس انگلیسی خوشصحبتی آشنا شدم یک روز که داشتیم شطرنج بازی می کردیم حرف عجیبی زد گفت هایی را که گرفته ای دیدم هنرمند خوبی هستی از کسی هم ترس نداری تا حالا هیچ عکاس غربی به شهرهای مقدس اسلام نرفته و از آنجاها عکس نگرفته تو میتوانی این کار را انجام بدهی خیلی مشهور میشوی هیچ سابقه ذهنی در این مورد نداشتم برایم شرح داد گفت سعودی ها قانونی دارند که بر اساس آن ورود غیر مسلمان به شهرهای مکه و مدینه قدغن است. یعنی اگر گیر می سر از زندان در می آوردم. یا اینکه مجازات سخت تری در انتظارم بود. حرفهای انسانشناس انگلیسی کنچکاویم را برانگیخت. راستش در آن دوره از هر چیز غیرقانونی و خطرناک خوشم میآمد. تازه پای پول و شهرت هم در میان بود. مثل مگسی که جذب شیرینی بشود به طرف این فکر کشیده شدم. آنطور که انسان شناس انگلیسی میگفت این کار را به تنهایی نمیشد انجام داد. باید کمک میگرفتم. گفت با صوفیها آشنا بشو اگر به تو علاقهمند بشوند و در وجودت ای ببینند ممکن است کمکت کنند. صوفی چیست به چه کسی سوفی میگویند هیچ چیز نمیدانستم اما برایم مهم نبود تصمیم خودم را گرفته بودم میخواستم اولین عکاس مسیحی باشم که وارد مکه و مدینه می شود و دنبال کسی بودم که در این کار کمکم کند سوفی ها وسیله ای بودند که مرا به هدفم میرساندند البته راستش آن وقتها همه چیز و همه کس در نظرم وسیله بود زندگی خیلی عجیب است الا می دانی آخر سر نه به مکه رفتم نه به مدینه نه آن موقع نه بعدن حتی پس از گرویدن به اسلام هم آنجاها نرفتم ماجرایم مرا به مجرایی کاملا متفاوت کشاند سر هر پیچی کمی بیشتر از حالتهای قبلیم دور شدم در پایان سفر به جایی نرسیدم راه مرا دگرگون کرد و اما تصوف از کجا می چیزی که در آغاز در نظرم فقط نوعی وسیله بود روزی به هدف تبدیل می شود من فکر می کردم از صوفی برای رسیدن به منافعم استفاده می کنم. اما پس از آشنایی با آنها چیزی به اسم من باقی نماد. به این مرحله زندگی میگویم موسم آشنایی با حرف واو کلمه صوفی، باقی بقایت، عزیز.